سپاسگزارم که با ما همراه هستید. فرشید نصراللویی هستم. خبرهای دانمایی در هفته که گذشت رو به سم شما میرسانم. با رادیو اربورز همراه باشید. دانمارکی‌ها در رتبه دوم مهارت بر زبان انگلیسی در دنیا بر اساس تازه‌ترین مطالعه تحقیقاتی سازمان بین‌المللی تحصیل EF که به مدت 6 سال از سال 2010 تا سال 2016 میلادی و روی بیش از 5 میلیون فرد در 6 کشور مختلف غیر انگلیسی زبان دنیا در قالب یک آزمون آنلاین زبان انگلیسی صورت گرفته است کشورهای هلند، دانمارک، سوئد، نروژ فلاند، سنگاپور و لوکزامبورگ به ترتیب در رده‌های اول تا هفتم برترین کشورهای دنیا قرار گرفتند که بردمان ها از بالاترین میزان آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی در حد عالی برخوردار هستند پولی شدن کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره برای حفظ محیط زیست با پولی شدن کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره در سوئد و به زودی در دانمارک که با هدف کمک به حفظ محیط زیست انجام شده است حدود 90 درصد مصرف کنندگان از برداشتن کیسه منصرف شدند صنعت ماهیگیری دانمارک صنعت ماهیگیری دانمارک بهترین سال را تجربه می کند. در طول 55 ماه اول سال 2017 در حدود 449 هزار تن ماهی از دریا گرفته شده که نسبت به سال گذشته 100% درصد افزایش داشته است. گفته می شود این وضعیت به بنادر ماهیگیری و صنایع جانبی رونق بخشیده و اشتغال زیادی را به دنبال خواهد داشت. یک سخنگوی انجمن ماهیگیری افزایش هشت الا نه درصدی را در سود سالانه پیش بینی کرده است. قانون جدید تکت دیگری در بوته آزمایش اخیرا قانونی در دانمارک بست شده که تیان میزان محکومیت تکت دیگری در دانمارک به دو هفته زندان تعذیری افزایش بدا کرد. این در است که دوزی و جیب تنها جریمه 500 کرونی به دنبال خواهد داشت. اکثر گدایان در دانمارک افراد بی و برخی نیز از کشورهای اروپای شرقی هستند و قانون جدیدن جدید عمدتا به خاطر ایجاد کمپ های خیابانی و مزاحمت‌های این افراد برای ساکنین برخی مناطق درون شهری وز شد با این حال این قانون به شدت از جانب مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته چون که به اعتقاد آنها مشکل بی را حل نخواهد کرد حزب سوشیال دموکرات به مدارس مسلمان ها پول نمی دهد حزب سوشیال دموکرات در نظر دارد بودجه مدارس مجانی مسلمانان را قطع کند سخنگوی همگرایی حزب از آن داشت که این پیشنهاد ممکن است تبیز و یا ناقص قانون دانباید باشد اما آن را یک سیاست هدفمند مندانست تا تبیز آمیز بودن آن وی ای دلیل این چرخش سیاست هزر را افزایش در تعداد دانش آموزان مسلمان دانست و گفت مسلم است وقتی که تعداد این دانش آموزان در طول چند سال اخیر پنجاد درصد افزایش پیدا کند زنگ خطرها به صدا در می آین. اما ما در این حال دائما در صدد بهبود روش همگرایی هستیم اقدام قانونی زوج عروس نوجوان علیه مقامات مهاجرت یک عروس 17 ساله پناهجوی اهل سوریه مجبور شد به خاطر دستور وزیر مهاجرت برای جدا نمودن زوجهای زیر سن قانونی مدتی از همسر خود جدا زندگی کند این دستور بعد از تحقق آمودزن پارلمانی لغو شد چون که خلاف قانون دانمارک و ناقض کنوانسیون حقوق بشر تشخیص داده شده این زوج حالا درخواست کمک حقوقی نموده تا علیه مقامات اداری مهاجرت اقامه دعوی امد مارتین هرکسن رئیس کمیسیون مهاجرت و همکرای پارلمان از حزب مردم دانمارک گفت این, این اقدام نمک نشناسی این زوج را نشان میدهد که دولت دانمارک برای آنها غذا پوشاک بسکن و امنیت فراهم نموده است وی افزود طاهی این پرونده در دادگاه نشان خواهد داد که سیستم مهاجرت ما کاملا از کنترل خارج شده و از ما سوء استفاده می شود. خانم استوربرگ از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. دفاع وزیر امور خارجه از انتقاد از ترامپ سامی لوسان وزیر امور خارجه از دولت از دراپ جمهور آمریکا به خاطر درگیری لفظی با شبکه خبری CNN انتقاد کرده اما حزب مردم دانمارک این واکنش وزیر امور خارجه را غیر دیپلماتیک توصیف کرد اسپرسن رئیس کمیسیون سیاست خارجی از حزب مردم دانمارک گفت موضوع جدال بین رئیس جمهور آمریکا با رسانه ها ربطی به دانمارک ندارد و روش بهتری این بود که وزیر امور خارجه دانمارک به جای پاسخه توییتری موضوع را با سفیر آمریکا در میان میگذاشت اما سه وزیر امور خارجه سابق دانمارک از احزاب سوسیال دموکرات، محافظگار و مردم سوسیالیست به دفاع از اقدام سامیلوسن برخواسته و از موازه وزیر امور خارجه دانمارک درباره آزادی رسانه ها حمایت کرد آقای سامیلوسن نیز در سخنرانی خود به مناسبت روز چهار ژوئیه سالروز استقلال آمریکا گفت دوستان نزدیک باید همیشه بتوانند صادقانه با هم صحبت کنند. پتانسیل طلای سیاه هالت وزیر انرژی دانمارک اعلام کرد که درآمد مالیاتی دانمارک از دریای شمار در طول 40 سال گذشته بالغ بر 400 میلیارد کرون گردیده و از این بابت مشاغل زیادی نیز ایجاد شده. به گفت دانمارک تا کنون حتی تنها نیمی از ذخایر نفت و گاز سهم خود را از دریای شمال را مورد بهرهبرقردار داده و ذخایر در جا میتواند تا حدود 3 میلیارد بشکه نفت را شامل شود وزیر در این حال اعزان داشت که اکتشافات طلای سیاه دشوارتر و چالش های استخراج آن سختتر شده است بنابراین باید یک استراتژی جدید را شود که طی آن شرکت‌ها بتوانند به یکدیگر کمک کنند. امتیاز مالیاتی برای فرودگاه‌های دانمارک دولت دانمارک در ارائه یک استراتژی جدید هوانوردی مالیات حدود هوایی که از فرودگاه‌های دانمارک از جمله کپنهاگ استفاده می‌کنند را کاهش خواهد داد. هدف از این امتیازهای جذب مسافران بیشتر برای استفاده از این فرودگاه ها میباشد سال 2016 تعداد 29 میلیون مسافر از فرودگاه کپنهاگ استفاده کردند که نسبت به سال ماقبل یک افزایش نه یک درصدی را نشان میدهد در همین مدت تعداد گردشگران خارجی ورودی به کوپنهایگ 11 درصد افزایش داشت قوانین جدید ویزای دانمارک از روز اول ماه ژوئیه تمامی اطلاعات ارائه شده در موقع درخواست ویزا از جمله اثر انگوش و عکس های بیومتریک متقاضیان ویزا با مجوز اقامت در دانمارک برای مدت طولانی در یک مرکز سبت در وزارت مهاجرت و همگرایی نگهداری می شود هدف از این امر شناسایی و کنترل هویت این افراد اعلام شده دستگیری دومین مزنون ترور دانمارکی در اسپانیا. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یک دانمارکی دیگر به زن حمایت از ترور در اسپانیا بازداشت شده است. فرد 29 ساله دانمارکی سوری تبار، روز جمعه در شهر مالاگا دستگیر شد. مقامات اسپانیایی معتقدند وی طی دو سال گذشته در کنار دولت اسلامی میجنگیده است. پلیس اسپانیا در حال تحقیق برای کسب اطلاعاتی بیشتر درباره ارتباط وی با دولت اسلایم باشد. نغص وزیر دانمارک گفت اتحادیه اروپا باید صرفه جویی کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر کدام مبالغی را برای اداره این اتحادیه پرداخت می‌کنند اما خروج بریتانیا باعث از دست رفتن سهم پرداخت بریتانیا خواهد شد. این مبلغ قبلا توسط رئیس کمیسیون بودجه بین 75 الی 90 میلیارد کرون تخمین زده شده بود اما اخیراً گفته شده که این کسری شاید تا دو برابر این مبلغ هم افزایش شود. به همین دلیل برای جبران عدم پرداخت جانبی بریتانیا کشورهای دیگر باید سهم خود را افزایش دهند در عوض اتحادیه اروپا با اقتصاد بودجه برای برخی پروژهها این پرداخت را جبران کند اما برخی کشورها بیشتر از مبلغی که میپردازند دریافت می‌دارند و یا آکس. دانمارک از معدود است که بیشتر از آنچه دریافت میدارد میپردازد به همین دلیل آسموسن نقص وزیر از اتحاد اروپا خواست برای جبران این پرداخت یک برنامه سرفجوی گسترده را در دستور کار خود قرار دهد. و آخرین خبر یاکوب هولبراد رئیس انجمن کارفرمایان دانمارک بر حضور استعدادهای خارجی برای پر کردن کم بوده نیروی کار ماهر در دانمارک و رفع کمبود نیروی کار تأکید نمود و از دولت خواست سودر ویزا و زمینه پیوستن اعضای خانواده به شاغلین خارجی در دانمارک را تسهیل بخشد دو حزب مردم دانمارک و دموکرات فورا این نگرانی را رد کرده اظهار داشتند که هرگونه تغییر در های مهاجرتی باید وضعیت را از این هم بدتر کن. تندرستیتون پایدار عزیزان